یک راهزن معروف به نام مراد بیک در سریال روزی روزگاری با بازی به یادماندنی زنده یاد خسرو شکیبایی رفته رفته در طول داستان متحول و به فردی صالح تبدیل میشه. زنده یاد جاله اولوف در این سریال نقش خاله لیلا رو بازی میکنه. روح شاد یادش گرامی. بمونی به اجازه کیسی که روشن کردی؟ درست بگیریم توفنگاتونه این چجور توفنگ دست گرفتنه؟ کوهستون پیر و سرش نمیشه این کار زحمت و خستگی زیاد داره پوست خر میخواد قوه قاطر میخوان که بمونین؟ کار خطرناکه با جون سر کار داریم ذرای شیر میخواد جرعت مرد دارین که بمونین؟ بله کار ما آقا ترخیش زیاده ولی وانقدران بد نیست نترسین رو بمونین پس تا آدم مرد بار میاد نترسین رو بمونین اگر هم یه وقت دیدین کم کم خوف براتون داشته و از صدای گل میترسین راش آسونه توبه توبه که خرج نداره تو توبه از اون توبه نیست کپو یه وقت نری جایی بگی رفیقا ترسو بود گریخت لاحق بشین پهرو من میخوام با طرف بزنم ببین پیرامر من اگه میخواستم نصیحت بشنفم پدر بزرگم هنوز زنده است میموندم پیش اون <وزنی> <التقا> یعنی تو اینقدر صاف و ساده ای که من و بابا بزرگ تو قد هم میبینی مگه تو کی هستی؟ اصلا تو چی اومدی اینجا داری از آدم من حرف مگیشی؟ خام دوست بود خان نبود لابا تو هم اسمشو شنفتی وقتی سن سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تن هزار تا قافله رو لغت کنم با همین یه حرف با جونش وایسد و هزار تا قافله رو لغت آخرونگی پشت دستشو داغ زد و به خودش گفت هزار تا تموم شد حالا ببینم ورزشو داری تنائی. یه غافله رو سالم برسونیم مقصد نشو نشو نا تو نیست تو خودش شد. دغدغه از این بات تا؟ سریال گورک ها داستان محکومیت مردی به نام صفتر آهنگره که محکوم به ادام شده و حکیم شهر که مردی متقی و پرهیزگاره سریال آینه عبرت سریالی اجتماعی بود که به معضل مواد مخدر می‌پرداخت پسری آرایشگر با سن بالایی که داره هنوز ازدواج نکرده و همین امر منجر به این میشه که هر کدوم از دوستانش شخصی رو برای ازدواج به او معرفی کنند این قضیه تا جایی پیش میره که پسر خسته میشه و سعی میکنه به زندگی خودش سر و سامونی بده. در هر قسمت از داستان آرایشگاه زیبا پسر به همراه مادر و خواهرش به خاستگاری میره ولی هیچ کدوم سودی نداره تا اینکه الله خان پدر خانوادهی پر جمعیته او پنج فرزند داره که تقریبا همگی گوش به فرمان پدر هستن او پدری است کاملا سنتی که توقع داره تمام خانواده به حرفش گوش بدن و از تصمیماتش تبعیت کنن در این حال عروس کوچیکش که دختر برادرش هم محسوب میشه حاضر به زندگی به صورت مشترک تو خونه پدر سالار نیست و نمیخواد در اتاقی که اسدالله خان آماده کرده زندگی کنه عروس کوچیک خانواده در مقابل پدر سالار میسته و همین باعث میشه تا اسدالله خان با تمام بچه ها قطع رابطه کنه و اونها رو از خونهش بیرون کنه او یا تمام بچه ها رو میخواد یا هیچ کدومه نمیخواد و در سریال چندین بار این جمله رو تکرار میکنه سرش زنده یاد حمیده خیرابادی که روحش شاد و یادش گرامی باد نماینده زنانیه که در جامعه ما بسیار زیادن او دلش با بچه هاست ولی متاسفانه زورش به پدر سالا نمیرسه اما در غیاب او تا میتونه به بچه هاش کمک و یاری میرسونه و سعی میکنه اصدالله خان رو راضی کنه تا از خر شیطون پیاده بشه چرا نمیخوابی؟ طوری شده از تو نه برو بگی بخوا فیرزنی که در سرای سالمندان زندگی میکنه به خونه برمیگرده تا روزهای پایانی عمرش رو توی خونهش و کنار فرزندانش که هر کدوم گوشه‌ای به زندگی خودشون مشغولن بگذرونه گرمی حضور مادر توی خونه فرزندان رو دور هم جمع میکنه و در این مجال فیلم مادر به معرفی های داستان میپردازه با بازی تحسین برانگیزه یاد رقیه چهره آزاد روحش شاد یادش سبز. تو خدمت اینجا باقی منده مرد بحر مقداری از هر کار میدند او محلون مرا لایق هر کاری بداند امر کند تقطی و سکر و تقشیر و البصل. بسر حرفات که مثل روتف شیرینه قند بشکن پسرم بشکن که بشی قند مکرر نزدی حاج خانومه به سلامتی رخت آفیت پوشیدن عداش گوش گوشت شونه عزاز مادر تدارک که غذای مرگشم دیده مردن مادر پیر مام حکایتیه <تصفح> چه حال و احوالی الله <تصفح> اکبر سر شام گریه نکنین غذا رو به مردم زهر نکنین سماور بزرگ و استکان نربی هم به قدر کفایت داریم را نیفتین دوره در همسایه پیزرف و ظروف آبروداری داری کنین بچه ها نه با اصراف، با آتا سفره از صفای میزبان خورنم میشه نه از حرمت زنیت مادرتونو حفظ کنین محمد ابراهیم خیلی ریز نکن مادر اون وقت میگن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز دار. <تصفيق> دعاست بخونم تنه رو پهنه میکنم میکنم تو ملاج اینو میمونه یه حلوا هدیه ی صاحبان عذاب اهل قبول این تنها شیرینی ضیافت مرگ اترو تعمش دعاست روغن خوبم تو خونه دارین زعفرونم هست اما چربی و شیرینی ملاک نیست این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن اجرشم نزول سلوات و همدقن فقط دل پس آردم خاطر جام نیستم میترسم مونده باشه آرده اش میخرم بعد فرده علو علو میپزم تر علو. <تصفيق> های مجید ریتم آرومی داشت و سالهای سال از عالم پلک صورتی و تاموجری دور بود زیبایی این مجموعه در سادگی و نزدیکی به واقعیت بود و مثل آینه‌ای بود که در برابر زندگی خودمون قرار داده بودند مجید پسرکی لاغر شیرین زبان عاشق کتاب و کتابخانی و بیزار از ریاضی بود او نوجوانی مهربان و با اعتماد به نفس بالا بود پسرکی دلسوز که شیطنتهاش از سر صداقتی کودکانه بود جان فکر میکنید نمره خوب گرفتید فکر میکنید غافل از این چه حساباتون اشتباه بوده ماخ میافتود به چرت و پر معلم با ما بد بوده سوالا سخت بوده سوالا خارج از بوده ولی اینا بدونی مقصر خودتون هستین همیشه یه مش قلودو قلوط ورقائم تا اونم می نویسید و وقت فکر میکنید درست نوشتین مسئله مسئله این دانش ایشونه اعتراض داره که چرا نمره ریاض شده گرفته است پنج در صورت که همیشه نمره خوب میگرفته است حالا برای اینکه من بدون ثابت کنم که معلم با دانش آمود دشمن نیست مرزی تو بیا بالا بذر بذر من دفتره دم بچه حالا من نمره ریاضی این دانش آمود به ترتیب برادو میخونم گوش کنیم یک سفر دو پنج چار یه شاهکار ها. دو مرتبه توجه کنیم چار پند یک سفر یه شاهکاری دیگه ها. خو خب، میخوام ببینم شما خیلی تر از این شاجه جذب پیدا میکنید بفرمایید. البته خب خورورا؟ بخو. انشا در واقع چه کسی بیشتر از همه به مردم خدمت میکنن. همه میدونن که دکترها و پرستارها خیلی به مردم خدمت میکنن. همه میدونن که معلمها و چهارها رو باسواد میکنن که در آینده کور و بی سواد نباشن. همه میدارن که سرباز پاسبان رفتگر چه هایی به مردم میکنن. اما اگر قطعی فکر کنیم میبینیم کسانی در این اجتماع هستن که خیلی خدمت بکنن و ایچ کس هم به فکر آنها نیست و اسم از آنها نمیبره. این افراد زحمتکش زحمت هستند. مردشور ها هستن. آری. <تصفح> <تصفح> آخو. آری، یک فرد مردشور خیلی زحمت میچشن. اما کسی او رو... را دوست ندارم با اینکه همه ما بالاخره یک روز به مردشور احتیاج پیدا میکنیم اما هیچ کس با مردشور مهربان نیست و یک مردشور هرچقدر چقدر هم در کارش ماهر باشد و مردهای ما را خوب شستشو بده اجازه جوزه نخونیم از قرار آقا مردشور و زنش لیلا مردشور هم محلی های ما هستند این زن و شوهر آدمهای خوبه خوب نازنین هستند و دو تا دختر دارند که خیلی بابقال بابقا هست. بابقا هستند اما هیچکس کس به خاصدگاری آنها نیامده چون هیچکس کس نمیخواهد به در زنش مردشور باشد البته خوده مردشوها هم این چیزها را می ولی به روی خودشان نمیآورند و باز هم به مرده مرد های ما رو خوب می پس آنها خیلی به اجتماع خدمت میکنند چون چون از کسی توقع ندارند در صورتی که آنها می توانند به طلافی این نو مهربانی ها دور از چشم صاحب مرده به مرده لگت بزنند و موش به پک و آقا ایک اجازه بدین دیگه نخونه آقا بکنین شما انشار ما به چام گوش میکنه اگر نخون نوشته چه میکنیم؟ بخونش بخون. میکنه بخون ب بخون ما بانیشه از ز زبان هم موردشون ها رو آزار میدهیم و به آدمی که لباس بد بپوشد و قیافش نام... نامرتب باشد میگوییم مثل مثل مردشوها از در در که همه از قر... آقا همیشه های تمیز می بوشد. البته لباسهایش کهنه است ولی خیلی تمیز و مرتب است مرد مردشوها در کمال صبح و حوصله و فلاح و همه مردم را هر شغل و مقامی که واشان قدش به من قدش به من مردشون رو زیده ده ببرم که مردشون بیشتره سنبه به مردم خدمت رو کنه چی این موزه خفا تو بردو نشته آقا ما خودمون تو این شب همه به چه رو راه نماییم کنی آقا آقا ما عدر یادم خوبه تو پدر مادرت مردشون نه آقا تو فکر فامیلتون بریم کسی رو مردشون داریم؟ پس خودت میخواد بردشور بشی؟ نه آبا آخه من میخوام بدونم تو تو آینده وقتی چه بزرگ شدی میخوای چی کار بشی؟ آقا هرچی خدا بخواد بنای خود خودمون دلمون میخواد آقا نویسنده بشی؟ نویسنده بشی؟ به چه نویسنده بشی؟ نویسنده بشی؟ به سره نبسی؟ دستی مردی آه. وای به حال خواننده آخر پس تو نمی یه نویسنده باید دارایی روحی لطیف باشه. تو میدونی نویسنده همش باید از عشق و گل و جیاه و محبت حرف بزنه؟ آمه ما از محبت حرف زنیم آقا محبت به مرد شورا آمه مرد شورا ما دو من دیگه حرف نزن حرف نزن حرف نزن اگه حرف بزنیم میزنم تو سره برش کتابم میخونی. بله حتمنم کتاب و صاد قدایت رو میخونیم آقا یه دونشو خوندیم آقا تو اسم تیم چطور حالمون میشه آقا دیگه نخونیم آقا در ذهن میگن کتاباش برا سن سالی ما خوب می آقا می خوب میس ولی تو میخونی خونید نیست که همه چیز تابوت و مرده و مرده حرف میزنه مردشون ریخته ده ببرن آها میشین آقا شما چه میخواید نویستنده بشی؟ چه موقع میشه فوش آور تو قصه و در درسی مردم؟ آقا فوش؟ آقا که آقا وقتی که میخواییم بگیم که آقا شخصیتی داستان آقا یه طبیعته است بعد از زمانو تو قصه آقا فوش مینست باری نه باریچه چه, چه زور فوشی؟ فوش که زیاد بد نباشه مثلا آقا مثلا فوش که زیاد بازیش نباشه دیگه آقا ها بگو آقا چی به چادون بزنیم ما بریم بشینیم آقا شما اون فوشی که میشه تو داستان نوشت و داد دستی مردمو وگو پاش آقا ما اصالش فوش بلد نیستیم آقا <تصفيق> چه به چه چه به چه نازنین چه به اصل و نسب داری یا خوش بده گسله آقا گسله چه که گسله است بله آقا که آقا است هم آبرومنده همین که آقا شخصیتی آدمی داستانه و آقا نشون میده یعنی من شخصیت گوستم آقا نه به خودم آقا شما نبودیم آقا اصلا هستن من منظورم شما نبود آقا به چونم شایدن آقا مابا خودم هستن منظورم آقا زنگا بزنم شما برده بیاسنم بی بی مادر بزرگ مجید زندگیاد پروین دخت یزدانیان زنی ساده دل زود جوش و گاهی کچخلق و بد که البته همه هم و غمش به سمر رسوندن مجید بود. پیرزنی که فرق زندگیش رو در تنگنا قرار می‌داد اما می‌کوشید تا شرافتمندانه زندگی کنه و خیشتندار باشه. بیبی بی های مجید این روزها با فراموشی دست و پنجه نرم می‌کند. مادر نمیشیر ماله گذاشتم با وقت لذت نخورید. ای ما رو میشکنی، با اینو کتیه قطع میکنی، کلیم خبیشی متشکنی دیسی وصل استعمرید بخورید. خوششم میتونه. سعیم کن بیاد این تو ترمو. اگرزم چیزیم نرسم، ما اتخد بیبی. از چی دستور رو استفاده باشه. و این زمستان قاملو به پیرزنی خوش زبان است که با لحجه شیرین اصفهانی بیبی را به راستی به نمایش گذاشت هیبی پیرزنی صبور، مهبان آقه و و پرحوصله بود که نوجوانی مجید را همراهی میکرد شما هم خودتون اون نقشایی که تو مجموعه داستانی قصه های مجید نقش آفرنی میکردید یا بهتون هست؟ نه طوری که شاید باید نیادم اونست یاد گرفتم سریال بازیم با آقای سلطانی سر نه. اصفهان یه صحنه داشتیم میگرفتیم اینجا. بچه‌ها یه دیالوگ داشتی که بعد می‌گفتی علی حسین رشته سری دراز داره. بعد آقای سلطانی شیطونی کرد گفت دیوی نگوی رشته ده بگو ما کارونی. بچه‌ها گفتید بعد پرسید گفتم نه پرس بعد بپرس بعد طرف اون بعدایی گفت علی تو جریه. فسادیم باید خودش په کار خودش باشه چه مرضی از کاردم کورمان کورمان یه راهی رو بره؟ برد کاسه چکنم چکنم دستش شما اماره خانوم جنا میگن جن کاسه از آشتاب تر باشی که خالده مجبوری کار رو برای تلات انجام بده آش همون آش و کاسه همون کاسه بی بی من برای عیدن رو بس خب چه کنم که ندارم برو کار کن من رو پول برو لباس بخیه برای لباس به خبرای داد کوت. من مجبور نمیشم چیزی کار کنم. میشوند داری هر سال پول هم سال پول نازل میآید تری چکار کنم یا نمیتونیم که بری میتونی پول دراری. هم در هم دارست و بخونی، هم پول دراری. در آری. حالا نرفتم در الان ایده الان من میگم کوت شلوار چی ندارم برای خدا مزور کس. مادرم حالش بده دیگه حالش بده و من اینجا لازم میدونم که از خواهرها برادرها نوه ها همه به علاوه عروسا دو که پرستاری میکنن مدیونی ما همه بهشون به خصوص به خواهرم توران که در عمر زندگیشو وقف به مادرم کرده در حال حاضر اوجای کنی درها اثر